میگوگند هستسب ان در صورت هر ای خورده بینان را ضمنی هستی. ای وی رامین قسمت پنجم در چهار بخش از داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین الدین اسعد گرگانی، سخن سرای نامی قرن پنجم هجری، صاحب دلان را رهاوردی بس جان فضا آوردیم. سخن به دانجا رسید که سرانجام بر اثر زاریهای های بیحد، دایه را دل بر رامین بسوخت و او پس از نیرنگهای بسیار، ویس را به دلجویی رامین کشاند و در پایان فریفته او ساخت از آن پس دو دلداده پیوسته از دیدار یکدیگر بهره میگرفتند و در خلوت به شادی مینشستند. نشستند شاه موبد برادر رامین که از این راز آگاه گشته و از مهره همسرش ویس نسبت به رامین به خشم آمده بود فرماندا تا ویس را در دژی بس استبار محبوس ساختند اما چندی بر نیامد که از کرده پشیمان شد و برادرش زرد را به سوی دش فرستاد تا ویس را دیگر بار به قصر آورد وقتی زرد همراه ویس بازگشت از شهریار درخواست که از گناه رامین نیز بگذرد و شاه موبد نیز چنین کرد آنگاه جمله به طرف نشستند و رامشگران نواختن گرفتند یک چند بگذشت شاه با سپاه از شهر بیرون شد و رامین را نیز در لشکرگاه نزد خود داشت اما شبانگاه رامین پنهانی از لشکرگاه گریخت و روی به قصر ویس نهاد و به باغ درآمد. شب دوشینه و روز بهاری که شاه باز آمد از گرگان و ساری سرای خیش را فرمود پرچین حساری آهنین و بند روین چنان شد زستواری خانه شاه کجا در وی نبودی بادرارا را. به روز نیک و هنگام همایون دروازه به شادی رفت بیرون به رامین بود باشا نهان از وی به شهر آمد شبانگاه شنشه جوست رامین را گه شام بدان تا میخورد با او دو سجام چو و به شهرندر شدکنون اکنون به دانستو کان چارست و افسون قمیده دل همی آن باغ زیاد ویس او را دل پر از داغ چو رامین یک زمان نارید بر دل ز دیده سیل خون بارید در گل میان سوسن و شمشاد و نسرین ز ناگه بر رو بودش خواب نوشین بیا سودان دل پردرد و پرغم که با او بود دوزخ باغ خورم رامین در باغ متوحش افتاده بود و ویس که دلش از حضور محبوب خبر میداد، آشفته و پریشان به سبب آهنها که به فرمان شاه موبد بر درها زده بودند بیرون شدن از قصر نمی توانست سرانجام ویس از ریسمان ها که بر سرا پرده بسته بودند با رنج بسیار به بالای قصر شد و سپس به باغ درآمد. و رامین آنگاه چشم گشود که ویس بر بالین او ایستاده و باغ از بوی او اطراگین گشته بود شه بیدل به باغندر قنوده، نگارش روی محپیکر شخوده چو دیوانه دوان گرد شبستان ز نرگس آب ریزان برگلستان همی دانست کش رامین به باغ است دلش را باغ بی او تفت داغ است نه روزن دید و رخن جایگاهی نه بر بام سرایش دید راهی چتاب مر جانش را همیتافت. تافت ز دانش خیشتن را چاره یافت سراپرده که بود از پیش ایوان یکی سر بر زمین دیگر به کیوان او بسته تناب سخت بسیار یکا یک ویس را درمان و تیمار فکند از پای کفشان کوه سیمین به دو بر رفت چون پرنده شاهین هم از چشمش روان خون و هم از پای همی گفتی از این بخت نگون وای به حق دوستی ای باد شبگیر برای من زمانی رنج برگیر. اگر با بیدلان هستی نکورای منم بیدل یکی بر من ببخشای. نگه کن تا کجا یا بی کسی را که رسوا کرده همچون من را هزاران دل به چشم از جای برکند به هجران داد یا بر آتش افکند Thank <laughs> you. ببین حال مرا در مهرکاری بدین سختی و رسوایی و زاری بگو ای نو بهار دلربایی به خوبی یافته فرمان روایی کجایی ای مه تابان کجایی چرا از باختر برمی نیایی؟ چو یک نیمه سپاه شب در آمد مه تابنده از خاور بر آمد به همامیخته شد مشک و انبر دو هفته ماه شد پیوسته باخر سبوی ویس رامین گشت بیدار به بالین دید سروی یا سمنبار به جست از جای و اندر برگرفتش پس دو ظلف چون انبر گرفتش گهی از ظلف او انبر فشان کرد گهی از لعل او شکر فشان کرد بپیچیدند بر هم دو سمن بوی دو دیبا نهاده روی بر روی تو گفتی شیر و باده در همامیخت و یا گلنار و سوسن بر همامیخت زشادیشان همه خندید لاله به دستندرش یا بوتین پیاله زمان زشت روی خیش بنمود به تیغ رنج کشت ناز بدرود سرگه ایشان را چنان کرد که باغش داغگاه هر کرد جهان را گوهر زشتکاری زشت کاری چرا زومه بانی گوش داری به نزدش هیچکس کس را نیست آذر که بیمهرست و بیقدرست و بیشر شاه موبد از دیگر بار رفتن رامین به قصر با وجود آهنها که بر درها استوار کرده بودند آگهی یافت و در شگفت شد شبهنگام از جای جست و به سوی قصر روان شد از چراغها که در پیشا پیش شهریار می بردند ویس و رامین به خود آمدند رامین گریخت و ویس از زاریها که کرد متحوش در باغ نقش زمین شد شو شاهنشاه آگه شد سر رامین دگر ره تازه گشتن در دلشکین همشه با دلو را بود پیکار که تا کیز این فرومای کشمبار. اگر ویسه نویس است آفتاب است چومینونی که بختان را ثواب است نیرزد جور او چندین کشیدن زمهرش این همه تیمار دیدن چه سود ارطنش خوشبو چون گلاب است که تون آتش روانم را عذاب است چرا من آزموده آزمایم چرا من رنج بیهود فزایم همه شب شاه شاهان تا سرگاه از اندیشه همی پیمود سدرا جو از خاور برآمد ماه تابان شنشه سوی مرو آمد شتابان می آمد دایه بند و مرد بنمود بدان دانچاره دلش را کرد خوشنود سراسر بندها چونان که او بست یکایک دید نابرده بدود است قفص را دید در چون سنگ بسته سرایی کپ که او از بند جسته به دایه گفت وی سمرا چه کردی؟ بدین درهای بسته چون ببردی؟ چو احر من شما را ره نماید در بسته شما را کی بپاید پسانگه تازیان زدر چندان که بیهش گشت دایه همچو بیجان بگشت و ویس را جست از همه جای ندیدان روی دلبند و دلارای چون در باغ شد شاه جهاندار به پیشان در و شمع بسیار خجسته ویز چون آن شمها دید چبوتروار دلشستن بپرید به رامین گفت خیز ای یارو بگریز کجا از دشمنان نیکوست پرهیز نگر تا پیش من دیگر نپایی که تاریکیست با این روشنایی کنون را رو در پناه پاکی از دان. مرا بگذار با این سیل و طوفان دل رامین بیچاره چونان گشت که گویی هم مرده بی روان گشت به سان صورتی بود مانده بر جای شده زورش هم از دست و هم از پای ز بحر ویس بودش درد بر دل تو گفتی تیر ناوچ خورد بر دل کجا چون دام بود و راشنچاه هم از درد جدائی پیش اوچاه کجا پیوند گیرت آشنایی نباشد هیچ دشمن چون جدایی همه مهنت بود بر آشغاسان چو باشد جان او از هجر ترسان مبادا هیچ کس را عشق چونان وگر باشد مبادا هجر ایشان چو رامین از کنار ویس برجست هست چو تیری از کمان خانه به برجست. چنان بر شد روی ساده دیوار که قرم تیستک بر شخ کوهساگ چو بر سر شد ز دیگر سو فروج است نکو آمد به دام و بس نکوج است سمن بر ویس هم بر جای بغنود به یک که از کشتن بتر بود به یاد رفت رامین کرده بالین به زیر زلف مشکین دست سیمین به بالینش فراز آمد شنشاه به باغ افتاده دید از آسمان ماه همی جستند رامین را به سد دست ندانستند که از دیوار چون است. وقتی شاه موبد نشانی از رامین نیافت خشمگین شد و ویس را سخت بیازرد. اما ویس افثانه ای گفت که شاه را باور آمد شنشه گفت با ویس سمنبر نگویی تا چه کارت بود ایدر چون من رفتم یک امشب نارمیدی چون مرغی از سرایم برپریدی چدیوی کت نبندت هیچ استاد به افسون و به نیرنگ و به فولاد ترا درمان به جز تیغم نداند که مرگت بخشد و جانت ستاند گرفتانگه کمندین گی سوانش کشیدان اجده های جانستانش مهش را خواست از سروش بریدن گلش را باز با گل گستریدن سپه زرد گفت ای شاه شاهان بزی خورم به بخت نیک خواهان مکش گر خون این بانو بریزی تو درد خیش را دارو بریزی پشیمان گردی و سودت ندارد بسی خون مرتو از دیده بارد یکی بار آزمودی جدایی نپندارم که دیگر آزمایی زبست گفتار زرد و لابه زرد شنچه دل بدان بطروی خش کرد برید از گیسوانش حلقه چند بدان گیسو بریدن گشت خرسند گرفتش دست و بردن در شبستان شبستان گشت از رویش گلستان به یزدان جهانش داد سوگند که امشب چون به زین همه بند مرا در دل چنان آمد گمانی که تو نیرنگ و جادو نیک دانی کسی باید که افسون نیک داند وگرنه کار چونین کی تواند سمن ویس گفتش کردگارم همینی کو کند هموار کارم چه باشد گر تو هم زشتی نمایی چو یزدانم نماید نیک رایی چرا خانی مرا بدخواه و دشمن تو با یزدان همی کوشی نبا من ستمهای تو با یزدان بگفتم در آن زاری و دلتنگی بخفتم به خوابندر فراز آمد سروشی جوانی خوب روی پوشی مرا برداشت از کاخ شبستان به خوابانی در باغ و گلستان زنسرین بود و سوسن بستر من جهان افروز رامین در بره من تو چشم از خواب نوشین برگشادم از آن خوشی به ناخوشی فتادم اگر باور کنی ورنه چونین بود به خواب اندر سروشم هم نشین بود شانشا این سخن زو کرد باور کجا گفتش دروغی ما پیکر گناه خیش را پوزش بسی کرد بر آن گذشته غم همی خرد روزی بهگوی که فرزانه ای پاک دل بود رامین را اندرس ها داد و از پیروی هوای دل بر داشت به دانسان که رامین از مهر ورزید دل برکند، راه سلامت در پیش گرفت و یک چند از ویست دوری گزید. چی فرزانه بودند در خراسان در آن کشور مه اخترشناسان. سخنگویی که نامش بود بهگوی نبودی مثل او دانا و نیکوی گه و بیگاه با رامین نشستی به آب پند جاننش را بشستی همی گفتی که تو یک روز شاهی به چنگاری هران کامی که خواهی درخت کام تو گردت برومند تو باشی در جهان مهتر خداوند چه آمد پیش رامین بام دادان مرو را دید بس دلتنگ و گریان بپرسیدش که درمانده چرایی چرا شادی و رامش نپذایی؟ خرد را در هوا چندین مرنجان روان را در بلا چندین مپیچان به جانان دل نبایستی سپردن چون نتوانستی هانج خوردن هر هرانگاهی که داری گل چدن کار ربا باشد اگر دستت خلد خار به مهراندر تو چون بازارگانی از او گه سود بینی گه زیانی چوبش این سخن دلخست رامین به دو گفت ای مرا چشم جهان بین. از گاری دیر آمد باری یا a Oh هر گام یکی باشد سازگاری دلی را چند باشد بردباری جهان را کاری بیش از آن است که ما را کوشش و صبر و توان است نبر من بگذرد هرگز یکی روز که ننماید مرا داغ جگررسوز پسانگه کرد با او یک به یک یاد که دیگر باره ایشان را چه افتاد چخاری کرد با او شاه شاهان به پیش ویس بانو ماه ماهان بدو گفت ای زبخت خیش نالان تو شیری چند پیچی از شغالان هوای دل چون موجنگیز دریاست در او رفتن نکار مرد داناست اگر تو ویس را سالی نبینی بدل جویی او دیگر گزینی. به گاه هیچ تیمارش نداری چون آن گردی که خود یادش نداری چو بر دل گردد مهر جانان به از دوری نباشد هیچ درمان